ده وینستون از فرط خستگی به لرزانک شباهت داشت لرزانک واجهی مناسب بود فل به ذهنش آمده بود گویی بدنش علاوه بر وارفتگی لرزانک بیرنگی آن را هم داشت احساس می کرد که اگر دستش را بالا بگیرد می تواند روشنایی را از پشت آن ببیند بر اثر کار طاقت فرسا خون و لنف از درون رگهای او بیرون کشیده شده و تنها پودی ظریف از عصب و استخان و پوست برچای مانده بود جملگی قواه حسی او انگار درشت نما شده بود رو پوشش شانه های او را میازارد پیاد رو را اشراق میداد حتی باز و بسته کردن دست مفصل ها را به صدا در می آورد. در ارض پنج روز بیش از نوت ساعت کار کرده بود. دیگر افراد هم در وزارتخانه همین اندازه کار کرده بودند. اکنون همه چیز تمام شده بود و الاز بیکار بود. تا فردا صبح کار حزبی نداشت. می توانست شش ساعت را در مخفیگاه و نه ساعت دیگر را در بستر استراحت به سراورد. در آفتاب ملایم بعد از ظهر خرامان خرامان راه مغازه ی آقای چارینتون را از مسیر خیابان کسیفی در پیش گرفت. ضمن که حواسش جمع پلیس گشتی بود، نابخردانه متقاعد شده بود که امروز بعد از ظهر خطر مداخله یک کسی در بین نیست. کیف سنگینی که در داشت در هر قدم به زانوانش میخورد و پوست پایش را به زغزغ می‌انداخت. داخل کیف، آن کتاب. که اکنون شش روز بود آن را در اختیار داشت. اما لای آن را باز نکرده و نگاهی هم به آن نینداخته بود. در ششمین روز هفته نفرت، پس از راه پیمایی ها، سخنرانی سخنرانیها، فریاد، سرود، پلاکاردها، پسترها، فیلمها، های مومی، آوازه ها تبلبانگ شیپور، به زمین کوبیده شدن پاها، لخ لخ فوجت ها غرش توده ی تراق تروق تراغ تفنگها شش روز پس از براه این بسات که حیجان عظیم به اوج خود می رسید و دیگ نفرت عمومی از اروسیه به چنان درجه از انفجار رسیده بود که اگر جمعیت دستشان به دو هزار اسیر جنگی اروسیه می رسید که قرار بود در آخرین روز مراسم به دار آویخته شوند بیچون و چرا تکه تکهشان می کردند. درست؟ در چنین این لحظه ای اعلام شده بود که اقیانوسیه در جنگ با اروسیه نیست. اقیانوسیه در جنگ با شرقاسیه بود. اروسیه متحد اقیانوسیه بود. البته تصریح نشده بود که تغییری صورت گرفته است. فقط به قید فوریت در همه جا منتشر شد که دشمن به جای اروسیه شرقاسیه است. لحظه ای که چنین تغییری صورت گرفت وینستون در یکی از میدانهای اصلی لندن در تظاهرات شرکت جسته بود شب بود و چهره سفید و پداکارت سرخ در پرت و نور ترسناک می‌نمودند. چند هزار نفری به میدان ریخته بودند که شامل یک سفه هزار نفر از بچه مدرسهی ها با آنی فرم جاسوسان هم بود بر روی سکویی پوشیده با پرده سرخ سخنرانی از حزب مرکزی قرار گرفته بود مردی باریک با بازوان بی و دراز و کله تاسی که چند تار موی بلند مانند علف هرز بران رو ایده بود و برای جمعیت نطق قررایی می کرد. با آن قیافه ریز میزهی که بر اثر نفرت از شک افتاده بود گردن میکروفون را به دستی گرفته و با دستی دیگر که در قیاس با بازوی استخانی حیولاوار می نمود هوای بالای سرش را وحشیان چنگ می اندا. با صدایی که از بلنگوها تنی نفکن بود فهرست پایان ناپذیری از شقاوت و کشتار و اخراج و چپاول و تجاوز به عنف و شکنجه زندانیان و بمباران غیر نظامی ها و تبلیغات دروغ و تجاوز بیدادگرانه و پیمانهای شکسته بیرون میریخت محال بود که آدم با شنیدن گفتار او ابتدا متقاعد و پس از آن دیوانه نشود هرچند لحظه یک بار دیگ خشم جمعیت به جوش میامد و صدای سخنران در میان قررشی وحشی صفت که بی اختیار از گلوی هزاران نفر بر میشد گم میگشت. وحشیانه ترین قررش ها از جانب بچه مدرسی ها می آمد سخنرانی بیستقیقهی پیش رفته بود که قاصدی با شتاب از سکو بالا رفت و تک کاغذی را در دست سخنران چپانید سخنران تکه کاغذ را باز کرد و بیان که گفتارش را قطع کند آن را خان. چیزی در صدای شیوه حرکت یا محتوای گفتارش تغییر نکرد اما اسمها به ناگاه دگرگون شدند بیان که کلامی گفته شود ماجی از تفاهم در میان جمعیت جریان یافت اقیانوسیه در جنگ با شرغاسیه بود لحظه بعد هم همه ی عظیمی بپاشد پلاکاردها و پاستر هایی که زینت میدان بودند نادرست از آب درآمدند. نصفان ها چهره عوضی داشتند خرابکاری شده بود معموران گلدشتان دست به کار بودند. در همان حال که پسترها را از دیوارها می کندند و پلاکارتها را تکه تکه و لگت می‌کردند. میان پردهای پر آشوب روی صحنه آمد. جاسوسان در بالا رفتن به پشت بامها و پایین کشیدن پرچمهایی که روی لوله های بخاری در باد پریشان می‌شدند. کاری کردن کارستان. اما در عرض دو یا سه دقیقه همه چیز پایان گرفته بود. سخندران که هنوز گردن میکروفون را به دست داشت، با شانهای خم گشته به جلو و دستی چنگ زنان به هوا، وقفه ای در گفتارش ایجاد نکرده بود. دقیقه دیگر و قررش وحشی سفت دوباره از حلقوم جمعیت برمی شد. نفرت به همان صورت پیشین ادامه یافت، الا اینکه آماج آن تغییر یافته بود. آنچه وینستون را در باز پس نگریستن تحت تأثیر قرار داد این بود که سخنران در وسط جمله بیان که مکسی بکند یا تعلیف کلام را در هم بشکند مسیر صحبت را عوض کرد. اما چیزهای دیگری هم ذهن وینستون را به خود مشغول داشته بود. در میانه آشوب بود. یعنی به هنگام پاره کردن پسترها که مردی ناشناس بر شانه او زده و گفته بود. عذر میخواهم فکر می کنم کیفتان را انداخته اید. با بی توجهی و بدون صحبت، کیف را گرفته بود. میدانست روزها طول می کشد و مجال خواندن آن را بیابد. به مجرد پایان گرفتن تظاهرات، مستقیم به وزارت حقیقت رفته بود. هرچند که ساعت نزدیک 23 بود. تمام کارمندان وزارتخانه نیز چونین کرده بودند. دیگر به دستورات صادر از تل که آنان را به کار می نیازی نبود اقیانوسیه در جنگ با شرقاسیه بود اقیانوسیه همواره در جنگ با شرقاسیه بوده است قسمت اعظمی از نوشتجات سیاسی پنج سال پیش از حیز انتفاع ساقت شده بودند هرچه گزارش و سند بود و روزنامه و کتاب و جزوه و فیلم و نوار و عکس باید به سرعت برق تسهیمی شد هرچند دستورال عملی نشده بود. مشخص بود که رؤسای اداره بایگانی بران بودند که در عرض یک هفته هیچ گونه اشارهی به جنگ با اروسیه یا اتحاد با شرقاسیه نمی باید برچای بمانند. کاری بیچار کننده بود. بیشتر بدان سبب که روندهای در برگیرنده آن را نمیشد به اسم واقعی نامید. در اداره بایگانی همه کارمندان در 24 ساعت هیچ ده ساعت را کار و دو سه ساعتی می خوابیدند توشک ها را از زمین ها می و در سرسراها میانداختند. غذا شامل ساندویچ و قهوه پیروزی بود که کارکنان رستوران آن را روی چرخ می آوردند. وینستون هر بار که میخواست بخوابد سعی میکرد میزش را بدون کار انجام نشده ترک کند و هر بار که با چشمان چسبیده و دردناک سر میز برمیگشت میدید که انبانی از لوله های کاغذی مانند پشمک رویان را پوشنده و دستگاه به بخاننویس را زیر گرفته و پخش زمین شده است. طوری که همواره اولین کارش این بود که آنها را مرتب کند تا جا برای کار کردن داشته باشد. بدتر از همه این که کار به هیچ وجه کار ماشینی صرف نبود. اغلب اوقات کافی بود که اسمی را با اسم دیگر جایگزین ساخت. اما هر گونه گزارش مشروح رویداد ها نیاز به دقت و تخیل داشت. حتی دانش جغرافیایی که برای انتقال جنگ از یک قسمت دنیا به قسمت دیگر مورد نیاز بود اهمیت داشت. روز سوم درد چشمانش دیگر تحمل ناپذیر شده بود و عینکش هر چند دقیقه یک بار احتیاج به پاک کردن داشت. به کلنجار رفتن با کار جسمی خورد ی شباحت داشت کاری که آدم حق داشت از انجام آن سر باز زند. اما در عین حال به حالتی بیمارگونه نگران به انجام رساندن آن بود تا آنجا که مجار به خاطر سپردن داشت این واقعیت که هر کلمه زمزمه شده به درون بخوانا به بنویس و هر گردش قلم دروغی تعمدی است آزارش نمیداد. مثل کارمندان دیگر خون خونش را می‌خورد که مبادا خلالی در کار سازی ایجاد شود صبح روز ششون فرو ریختن لوله‌های کاغذیک ها هش یافت تا نیم ساعتی چیزی از لوله فشار بیرون نیامد. سپس یک لوله کاغذی دیگر و سپس هیچ. کار بطور همزمان در همه جا کاهش می آهی عمیق و طبق معمول سری در اداره بایگانی منتشر شد. کاری گران که به گفتار آمد انجام یافته بود. اکنون برای هر آدمی محال بود که با سند و مدرک ثابت کند که جنگی با اروسیه واقع شده بود ساعت دوازده ظهر به گونه‌ای غیرمنتظر اعلام شد که تمام کارمندان وزارتخانه تا فردا صبح آزادند وینستون همچنان که کیف حاوی آن کتاب را در دست گرفته بود و هنگام کار بین پاها و موقع خواب زیر بدنش قرار می‌داد به خانه رفت صورتش را اصلاح کرد و با اینکه آب چندان هم گرم نشده بود داخل هممان به خواب رفت با قجاقش قج شهوت آلودی در هفتاد و دو بنده تنش از پله های بالای مغازه آقای چارینتون بالا رفت خسته اما دیگر خواب آلوده نبود پنجره را باز کرد چراغ نفتی کسیف و کوچک را روشن کرد و ظرفی آب برای قهوه روی آن گذاشت جولیا به زودی سر می رسید تا آمدن او به خواندن کتاب می پرداخت روی سندلی زهوار در رفتن نشست و تسمه کیف را باز کرد مجلدی سنگین و سیاه بود بینام و عنوان با صحافی ناشیانه چاپ آن نیز اندکی آشفته مینمود حاشیه هاشیه صفحات فرسوده بود و به سادگی ور می آمد. گویی کتاب بارها دست به دست گشته بود در صفحه اول چنین آمده بود تئوری و پراتیک اولیگارشی جمعی از امانوئل گلدشتاین وینستون شروع به خواندن کرد فصل اول نادانی توانایی است در سراسر تاریخ مکتوب و شاید از پایان اصر نوسنگی سگونه آدم در دنیا بودند بالا متوسط پایین به راههای فراوان به طبقات فرعی تقسیم گشتند اسامی را گوناگونی گرفته و جمعیت نسبی آنان همینطور گرایش آنان به یکدیگر دوره به دوره تغییر یافته است اما ساخت اصلی اجتماع هیچگاه تغییر نیافته است حتی پس از تحولات عظیم و تغییرات بهظاهر برگشت ناپذیر همواره همان نقشینه خود را بر جای نشنده است. درست، مانند دستگاه گردش نما که به رقم رانده شدن به هر سو همواره تعادل خود را باز میابد. هدفهای این سه گروه یک سر سازش ناپذیر است. وینستون از خواندن باز ایستاد. بیشتر به این قصد که قدر مطالعه در آسایش و امنیت را دریابد. او تنها بود. نه تلس نه گوشی بر سوراخ کلیدی نه عصبی که به عقب نگاه کند یا صفحه را باده است بپوشاند هوای دلانگیز تابستان روی گونه بازی میکرد. در دور دست دور فریاد خفیف بچه ها در هوا شناور شد در خود اتاق صدای جز آوای هشرگونه ی ساعت نبود خود را بیشتر به داخل صندلی فرو برد و پاهایش را روی پیش نهاد نعمت بود یت بود ناگهان، این رفتار گاهگاهی کسی که کتابی در دست دارد و میداند که عاقبت هر کلمه از آن را بازخانی می کند جای دیگری از کتاب را گشود و فصل سوم آمد به خواندن ادامه داد. فصل سوم، جنگ صلح است. انشعاب دنیا به سبرغاره رویدادی بود که قبل از نیمه قرن بیستم می توانست پیش پیشبینی شود و فلواقع پیش پیشبینی هم شده بود. با مستحیل شدن اروپا در روسیه و امپراتوری بریتانیا در ایالات متحده، دو قدرت از سه قدرت موجود و روسیه و اقیانوسیه در عمل به وجود آمدند. سومین قدرت شرقاسیه پس از دههی جنگ پراشوب دیگر به صورت واحدی مجزا پدیدار شد. مرزهای فیما بین سبرغاره در برخی جاها قراردادی است و در جاهای دیگر بر حسب تالع جنگ تغییر میپذیرد. اما در کل تابع خطوط جغرافیایی است. روسیه بخش شمالی سرزمین اروپا و آسیا از پرتغال تا باب برینگ را یک در بر میگیرد. اقیانوسیه شامل آمریکا جزایر اتلانتیک از جمله بریتانیا، استرالیا و بخش جنوبی آفریقا است. شرقاسیه، که کوچکتر از دو قاره دیگر و مرزهای غربی کمتری دارد. مشتمل است بر چین و کشورهای واقع در جنوب آن، جزایر ژاپن و بخشی بزرگ اما در حال تغییر منچوری و مغولستان و تبت. این سه قاره به نحوی از آنها دائما در جنگ با یکدیگرند و طی 25 سال گذشته چنین بوده است. با این حال جنگ دیگران مبارزه نومید و ویران نیست که در اوان های قرن 20 بود. جنگی است با اهداف محدود بین جنگاورانی که قادر از بین بردن یکدیگر نیستند هدفی مادی برای جنگ ندارند و اطلافی ایدولوژیکی بنیادینی از هم جدایشان نمیسازد. این گفته بدان معنی نیست که خصلت خونآشامی حاکم بر جنگ و گرایش جهانگیر به آن رنگ باخته یا سلحشورانه تر شده است برعکس جنون جنگ مداوم و جهان شمول است و اعمالی از قبیل تجاوز به عنف چپاول، کشتار کودکان، تحویل کل جمعیت ها به بردگی، قصاص گرفتن از اسیران که تا جوشانیدن و زنده به گور کردن هم کشیده می شود، طبیعی تلاقی می شود. و هنگامی که ارتکاب چنین اعمالی نه به دست دشمن که به دست خودی صورت می گیرد، مهر استحقاق میخورد. اما در مفهوم عملی شمار بسیار معدودی از آدمها آن هم اکثراً متخصصین کار کشته. درگیر جنگ می باشند و در مقام قیاس باعث تلفات چندی می شود. جنگ در صورت وقوع در مرزهای مبهم که آدم عادی برای پیبردن به حدود و سقور آنها تنها می تواند به حدث و گمان متوصل شود یا در اطراف دژهای شناور که نقاط سوق و جیشی راه های دریایی را حفاظت می کنند درگیر می شود. در مراکز تمدن جنگ معنای جز کمبود بی وخفه کالای مصرفی و انفجار گاه گاهی بمب موشکی که بلای جان دهها نفر می شود ندارد. جنگ فی تغییر خصلت داده است. دقیقتر اینکه دلایل جنگ افروزی به ترتیب اهمیت تغییر یافته است. انگیزه هایی که تا حدودی اندک در جنگ های جنگهای بزرگ عوان قرن بیستم وجود داشت، اکنون استیلا یافته و آگاهانه بازشناسی شده و به دلایل اصلی جنگ افروزی تبدیل شده است. برای درک ماهیت جنگ کنونی چرا که به رغم گروه بندی مجددی که هر چند سال یک بار پیش می آید همواره همان جنگ است باید در وهله اول توجه داشت که محال است سرنوشت ساز باشد هیچ کشکی بر قدرت حتی در صورت اتحاد دوتای دیگر هم مقلوب نمی شوند آنها هم چند یکدیگرند دیگرند و دفاع طبیعی آنان بسیار مستحکم است روسیه را سرزمین های بیکرانش در پناه گرفته است و اقیانوسیه را پهنای اقیانوس هایت و آرام و شرغاسیه را پربار بودن و جدیت ساکنانش. سانیان، دیگر در مفهوم مادی چیزی برای جنگیدن وجود ندارد. با استقرار اقتصاد مستقل که در آن تولید و مصرف در پیوند با همند، تلاش برای بازاریابی که سبب عمده جنگ های پیشین بود به پایان رسیده است و رقابت بر سر مواد خام دیگر موضوع مرگ و زندگی نمی باشد. در هر صورت هر یک از سعبرگاره چنان کران ناپذیر است که میتواند مواد مورد نیاز خود را در محدوده مرزهایش به دست آورد. تا آنجا که جنگ هدف مستقیم اقتصادی دارد، جنگی است برای نیروی کار. در میان مرزهای عبرگاره ها که به طور دائم در اختیارهی چیک از آنها نیست، مربعی قرار دارد که تنجه و برازاویل و داروین و هنگ کنگ از لاع آنند. و حدود یک پنجم جمعیت زمین را در خود جای دادند. به خاطر تملک این نواهی پر جمعیت و منطقه یخزده قطب شمال است که سه قدرت پیوسته در نبرد با همند. در عمل، هیچ یک از قدرتها تمام منطقه مورد را در اختیار ندارد. قسمتهایی از آن پیوسته دست به دست می گردد و شانس تصرف این یا آن تکه از زمین با ضربه ناگهانی خیانت است که تغییرات بیپایان پایانه صفبندی را املا می کنند. ممالک مورد نزا منابع اکانی ارزشمندی دارند و در بعضی از این ممالک محصولات گیاهی مهمی از قبیل لاستیک به دست می که در نواحی سردسی لازم میآید آید که آنها را با شیوه های نسبتا گرانتری به طور مصنوعی تولید کرد. اما از همه مهمترین که ذخیره بیپایانی از نیروی کار ارزان دارند هر یک از قدرت‌ها که منطقه حاره‌ای آفریقا یا کشورهای خاورمیانه یا هند جنوبی یا مجموع الجزایر اندونزی را زیر سلطه بگیرد بر صدها میلیون باربر ارزان قیمت و خرکار نیز دست می‌یابد ساکنان این نواحی که علنا تا سرحد بردگی نزود کرده اند، پیوسته در دست این یا آن فاتح میگردند. و در این مسابقه مانند زغال یا نفت مصرف می شوند تا سلاح بیشتری به دست آید، ناهیه بیشتری در تصرف آید، قدرت کار بیشتری در اختیار گرفته شود، سلاح بیشتری به دست آید، ناهیه بیشتری در تصرف آید و همینطور، الاغیرنهایه باید توجه داشت که جنگ هیچگاه از کنارهای نواهی مابه نزاف هراتر نمی رود. مرزهای های اروسیه بین حسچه کنگو و ساحل شمالی مدیترانه پیش و پس می جزایر اقیانوس هند آرام، پیوسته به دست اقیانوسیه یا شرقاسیه گرفته و باز گرفته می شوند. مرز میان اروسیه و شرقاسیه در مغورستان هیچگاه ثابت نیست. هر سه قدرت در اطراف قطب مدعی سرزمین های عظیمی هستند که در واقع قسمت های از آنها غیر مسکون و نامکشوف است. اما وزنی قدرت، همواره همچند و سرزمینی که مرکز هر یک از عبرگارره ها را تشکیل می همواره از تجاوز مسون می ماند. وانگهی، نیروی کار ملتهای استثمار نشده در اطراف خط استوا در واقع برای اقتصاد دنیا ضروری نیست. آنها چیزی بر ثروت دنیا نمی چون هرچه تولید می کنند برای هدفهای جنگ به کار می رود. و هدف جنگافروزی همواره باید در وضعیت بهتری باشد که بتوان آتش جنگی دیگر را افروخت. جمع بردگان با نیروی کار خیش، آهنگ جنگجویی مداوم را سرعت میدهند. اما اگر آنان وجود نمی‌داشتند، ساخت اجتماعی دنیا و روندی که با آن خود را ابقا می‌کند، در اساس تفاوت نمی‌کرد. هدف اولیه جنگافروزی جدید که بر حسب اصول دوگان باوری مغزهای متفکر حزب مرکزی این هدف را در آن واحد هم به رسمیت می شناسند و هم به رسمیت نمی شناسند این است که فرآورده های ماشین را بی هیچ ارتقا در معیار عام معیشت یک سر مصرف کنند. از اواخر قرن 19 به این سو، مشکل رفع رجوع مازاد کالای مصرفی در بطن جامعه صنعتی نهفته بوده است. در حال حاضر که معدودی از آدمها غذای کافی برای خوردن دارند، چون این مشکلی حیاتی نمی نماید. حتی اگر سیر مصنوعی انهدام هم به کار نیفتاده باشد. دنیای امروز در مقام قیاس با دنیایی که پیش از 1914 وجود داشت. مکانی بی حاصل و گرسنه و مخروب است. اگر هم با آینده خیالی که آدم های آن دوران چه هش بودند مقایسه شود که دیگر واویل هاست. در اوان قرن بیستم رؤیای جامعی آینده ای که بسیار غنی، و فارق البال و, و منظم و کار آمد باشد؟ دنیایی به درخشش الماس و گهند شده؟ ساخته شده از شیشه و فولاد و سیمانی سفید برفی؟ بخشی از آگاهی هر انسان تحصیل کرده بود. علم و تکنولوژی با سرعتی حیرت آور می کرد و تصور ادامه رشد امری طبیعی می نمود. اما چنین نشد، پارهی به سبب فقر حاصل از جنگ و انقلابهای طولانی؟ ای به دلیل وابستگی خوی تجربی اندیشه که در جامعی سخت قشربندی شده امکان بقا نداشت به پیشرفت علمی و تکنولوژیکی. به طور کلی امروزه دنیا ابتدایی تر از 50 سال پیش است. نواحی عقب افتاده چندی پیشرفته شده و ابزارهای گوناگونی که همواره به نحوی مربوط به امور جنگ و جاسوسی پلیسی است توسعه یافته است. اما تجربه و اختراط تا حد زیادی متوقف شده و ویرانی های جنگ اتمی دهی 1950 کلن جبران نشده است. با این همه خطرات نهفته در ماشین جنگ همچنان پابرچاست. از لحظه‌ای که سر و کله این ماشین پیدا شد برای اندیشمندان روشن بود که نیاز به خرابکاری انسان و بنابراین تا حدودی نیاز به نابرابری از بین رفته است. اگر این ماشین به طور عمد برای چنان قایتی به کار گرفته میشد، گرسنگی و کار زیاد و کسافت و بیسوادی و مرز طی چند نسل از میان برداشته میشد. و فلواغه بیان که برای چنین مقصودی به کار گرفته شود، با نوعی روند خود به خودی با تولید ثروتی که گاهی تازی آن محال بود، معیارهای زندگی آدم معمولی را طی دوره پنجاه ساله در اواخر قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم. تا حد بسیار زیادی بالا برد. اما این امر هم روشن بود که افسایش همه جانبه ثروت سقوط جامعی طبقاتی را تهدید می کرد. در حقیقت به تعبیر مایه یک سقوط آن بود. در دنیایی که هر آدمی ساعت کمی کار می کرد، غذای کافی برای خوردن داشت در خانهش هم و یخچال داشت، صاحب اتومبیل یا حتی هواپیما بود، و ترین و شاید مهمترین شکل نابرابری از میان رفته بود. ثروت در صورتی که یک عمومی می شد، مایه امتیازی نمی شد. بیشک می توان را تصور کرد که در آن ثروت به مفهوم داشته‌ها و تجملات به تصاوی تقسیم شود و قدرت در دست طبقهی معدود و ممتاز باقی بماند. اما در عمل چنان ای دوام چندانی نمی آورد. چون اگر همه به یکسان از فراغت و امنیت بهرمند می شدند، توده انسان انسانهایی که معمولاً مایه استهمارشان فقر است، با سواد می شدند و اندیشیدن را یاد می گرفتند. و در چنین صورتی دیر یا زود متوجه می شدند که اقلیت برتر عمل کردی ندارد و سر راهبرشان می داشتند. در دراز مدت، ای طبقاتی تنها بر اساس فقر و نادانی امکان پذیر بود. بازگشت به گذشته شبانی آنگونه که اندیشمندان در اوایل قرن بیستم رؤیای آن را میدیدند راه حلی عملی نبود با ماشینی کردن که تقریباً در سراسر دنیا به صورت شبه غریزی در آمده بود تصاد داشت وانگهی هر کشوری که به لحاظ صنعتی عقب افتاده بر جای می‌ماند به لحاظ نظامی بیچاره می‌شد و مستقیم یا غیر مستقیم محکوم به زیر سلطه درآمدن رقباوی پیشرفته‌تر می‌گرید نگه داشتن توده ها در فقر از راه محدود کردن بازدهی کالانیز، نیز راه حل رضایت بخشی نبود. چون این کاری طی واپس این دوران سرمایه داری حدودن بین سالهای 1920 و 1940 تا حد زیادی صورت گرفت. اقتصاد اکثر کشورها راکت شد. زمینها ها کشت نشد. کالای سرمایه ای افزایش نیافت. از کار کردن اده بسیار زیادی ممانعت به امنان. و از صدقه سر حکومت زنده ماندند اما این نیز به ضعف نظامی انجامید و از آنجا که محرومیت های ناشی از آن آشکارا غیر ضروری بود پیدایش گروه مخالف را ناگزیر کرد مشکل این بود که چگونه چرخهای صنعت را بدون افزایش ثروت واقعی دنیا در گردش نگه داشت لازم بود که کالا تولید شود اما نیازی به توضیح نداشت و در عمل تنها راه نیل به این مقصود جنگ پیوسته بود.